فصل هفتم بعد از آن ایسا در جلیل مسافرت میکرد. او نمیخواست در یهودیه باشد چون یهودیان قصد داشتن او را بکشن. همین که عید یهودیان یعنی عید خیمه ها نزدیک شد، برادران عیسی به او گفتند اینجا را ترک کن و به یهودیه برو تا پیروان تو کارهایی را که میکنی ببینند. کسی که میخواهد مشهور شود کارهای خود را پنهانی انجام نمیدهد، تو که این کارها را می کنی بگذار تمام دنیا تو را ببینند چون که برادرانش هم به او ایمان نداشتند عیسی به ایشان گفت هنوز وقت من نرسیده است اما برای شما هر وقت مناسب است دنیا نمیتواند از شما متنفر باشد اما از من نفرت دارد زیرا من درباره آن شهادت می دهم که کارهایش بد است شما برای این عید بروید من فعلا نمی آیم زیرا هنوز وقت من کاملا نرسیه است عیسی این را بانان گفت و در جلیل ماند بعد از آنکه برادرانش برای عید به اورشلیم رفتند، خود عیسی نیز بانجا با رفت ولی نه آشکارا بلکه پنهانی یهودیان در ایام عید به دنبال او میگشتند و میپرسیدند او کجاست در میان مردم درباره او گفتگوی زیادی وجود داشت بعضی میگفتند او آدم خوبی است و دیگران میگفتند نه اون مردم را گول میزند اما به ترس از یهودیان هیچکس کس درباره او به طور علنی چیزی نمیگفت در اواسط ایام عید ایسا به معبد آمد و به تعلیم دادن پرداخت. یهودیان با تعجب میگفتند این شخص که هرگز تعلیم نیافته است چگونه کتاب مقدس را می‌داند؟ عیسی در جواب ایشان گفت: آنچه من تعلیم می‌دهم از خود من نیست، بلکه از طرف فرستنده من است. کسی که مایل باشد اراده او را انجام دهد، خواهد دانست که تعالیم من از جانب خداست. یا من فقط از خود سخن میگویم هر که از خود سخن بگوید طالب جاه و جلال برای خود میباشد کسی که طالب جلال فرستنده خود باشد آدمی صادق و درون ناراستی نیست مگر موسی شریعت را به شما نداد شریعت که هیچ از شما آن را عمل نمی کند چرا میخواهید مرا بکشید مردم در جواب گفتند تو دیو داری چه کسی میخواهد تو را بکشد ایسا جواب داد، من یک کار کردم و همه شما از آن تعجب کردید. موسی قانون مربوط به ختنه را به شما داد، هرچند از موسا شروع نشد، بلکه از اجداد قم. و شما در روز سبت پسران خود را ختنه میکنید. پس اگر پسران خود را در روز سبت ختنه می تا قانون موسی شکست نشود، چرا به این دلیل که من در روز سبت به یک انسان سلامتی کامل بخشیدم بر من خشمگین شده اید از روی ظاهر قضاوت نکنید بلکه در قضاوت خود با انصاف باشید پس بعضی از مردم اورشلیم گفتند آیا این همان کسی نیست که میخواهند او را بکشند ببینید او در اینجا به طور علنی صحبت می کنند و آنها چیزی به او نمیگویند آیا حاکمان ما واقعا قبول کردند که او مسیح موعود است؟ با وجود این، ما همه می‌دانیم که این مرد اهل کجاست. اما وقتی مسیح ظهور کند، هیچکس نخواهد دانست که او اهل کجاست. از این رو وقتی عیسی در معبد تعلیم می‌داد، با صدای بلند گفت: شما مرا می‌شناسید و میدانید که اهل کجا هستم. ولی من به دلخواه خود نیامدم زیرا فرستنده من حق است و شما او را نمیشناسید، اما من او را میشناسم زیرا از جانب او آمدم و او مرا فرستاده است در این وقت آنها خواستند او را دستگیر کنند اما هیچ کس دست به طرف او دراز نکرد زیرا وقت او هنوز نرسیده بود ولی عده زیادی به او ایمان آوردند و میگفتند. آیا وقتی مسیح ظهور کند از این شخص بیشتر معجزه می‌نماید فریسیان آنچرا که مردم درباره او به طور پنهانی میگفتند شنیدند پس آنها و سران کاهنان پاسبانانی فرستادند تا عیسی را بازداشت کنند آنگاه عیسی گفت فقط مدت کوتاهی با شما خواهم بود و بعد به نزد فرستنده خود خواهم رفت شما به دنبال من خواهید گشت اما مرا نخواهید یافت و به جایی که من خواهم بود شما نمی توانید بیایید. پس یهودیان به یکدیگر گفتند کجا می خواهد برود که ما نمی توانیم او را پیدا کنیم. آیا می خواهد پیش کسانی برود که در میان یونانیان پراکنده هستند و به یونانیان تعلیم دهد؟ او می گوید به دنبال من خواهید گشت اما مرا نخواهید یافت. و به جایی که من خواهم بود، شما نمی توانید بیایید. مقصود او از این حرف چیست؟ در آخرین روز که مهمترین روز عید بود، عیسی ایستاد و با صدای بلند گفت، اگر کسی تشنه است، پیش من بیاید و بنوشد، چنان که کلام خدا می فرماید، نرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان می جاری خواهد گشت این سخنان را درباره روح القدس که می باید به مؤمنین او داده شود می گفت چون هنوز عیسی جلال نیافته بود و روح القدس عطا نشده بود بسیاری از کسانی که این سخن را شنیدند گفتند این مرد واقعا همان پیامبر موعود است دیگران گفتند او مسیح است و عده گفتند آیا مسیح از جلیل ظهور میکند مگر کتاب مقدس نمیگوید که مسیح باید از خاندان داوود و اهل دهکده داوود یعنی بیت لهم باشد. به این ترتیب درباره او در میان جمعیت دو دستگی به وجود آمد. ادهی خواستن او را دستگیر کنند، اما هیچ کس به طرف او دست دراز نکرد. بعد از آن پاسبانان پیش سران کاهنان و فریسیان برگشتن، آنها از پاسبانان پرسیدند چرا او را نیاوردید پاسبانان جواب دادند تا به حال هیچ کس مانند این مرد سخن نگفته است فریسیان در پاسخ گفتند آیا او شما را هم گمراه کرده است آیا کسی از رؤسا و فریسیان به او گرییده است و اما این آدمهایی که از شریعت بیخبرن ملعون هستند نیقودیموس که در شب به دیدن عیسی آمده بود و یکی از آنها بود از آنها پرسید آیا شریعت به ما اجازه میدهد کسی را محکوم کنیم بدون آنکه به سخنان او گوش دهیم و بدانیم چه کرده است در پاسخ به او گفتن مگر تو هم جلیلی هستی بررسی کن و ببین که هیچ پیامبری از جلیل ظهور نکرده است